گرامیان درود بر شما فایل سوم از کتاب فیزیولوژی ایمان نوشته نونفخر رو با هم آغاز کنیم صفحه 32 عنوان ترد از گروه گونه هوموساپینس وابستگی شدیدی به زندگی گروهی دارد یک انسان تنها نسبت به بسیاری از حیوانات قاره آفریقا یعنی محل تکاملش میلون ها سال گذشته نه پوست زخیمی داشته و نه دندانی تیز و بلند و نه چنگالی قبی و نه ازولاتی نیرومند اما در عوض از مزیت زندگی گروهی برای زنده ماندن و داشتن شانس تولید مثل بهره بهرمند بوده است مغز هر حیوانی که در گروه زندگی می کند باید خصوصیاتی داشته باشد تا او را به ماندن در گروه راقب کند میل هوموساپینس به ماندن در گروه باید چنان شدید باشد که به راحتی و با هر اتفاقی از گروه جدا نشود و نقشهی برای تنها زندگی کردن نکشیده و یا اگر کشید آن را به اجرا نگذارد. چرا که اگر این کار را بکند نه تنها شانس بقایش کم می شود بلکه بسیار محتمل است شانس جفتگیری و انتقال جنهایش به نسل بعد را هم به حد اقل برساند. به عبارتی آنها که در مغزشان میل به زندگی گروهی و ماندن و ارتباط با اعضای گروه بیشتر بود شانس بقا و انتقال اطلاعات وراستیشان به نسل بعد هم بیشتر بوده پس تعجبی ندارد اگر هایی در مغز هوموساپینس پیدا کنیم که میل به ماندن در گروه و رابطه با اعضای آن را ایجاد کند و یا اینکه در صورت ترد شدن از گروه تولید حس درد و رنج و بیقراری نماید. آنچنان که فرد را وا دارد برای خلاصی از آن درد و رنج دوباره در جهت پیوستن به گروه تلاش کند. آزمایشات متعددی برای بررسی تأثیر ترد شدگی بر روی مغز انسان تراهی و انجام شده است. در این آزمایشات به شرکت کنندگان نمیگویند که قرار است اثر ترد شدگی را روی آنها بررسی کنند بلکه اهداف دیگری را مطرح می کنند تا آنها نفهمند بناست که دچار حس ترد شدگی شوند یکی از این آزمایشات تست سایبربال است به آزمایش شوندگان میگویند که آنها قرار است با دو بازیکن دیگر که در اتاقهای دیگر هستند یک بازی کامپیوتری انجام دهند که در آن به هم توپ پاس می دهند تا عملکردهای مختلف مغز آنها را بسنجند. آزمایش آغاز می گردد و بعد از چند بار پاسکاری دو بازیکن دیگر شخص مورد آزمایش را ندید می‌گیرند و دیگر به او پاس نمی دهند و فقط بین خودشان پاسکاری می کنند. کپلینگ ویلیامز روانشناس از دانشگاه پردو بیش از پنج هزار نفر را با چنین آزمایشی مورد بررسی قرار داد و آثار ترد شدگی را در آنها رسد کرد حاصل چنین مطالعاتی این بود که زمانی که شخص ترد می‌شود، دو بخش از مغز یعنی دی یا دورسال آنتریور سینگولت کورتکس و AI یا آنتریور اینسولا دچار افزایش فعالیت می‌شوند. این مراکز همان مراکزی هستند که در بروز دردهای فیزیکی هم دچار افزایش فعالیت گردند. البته در دردهای فیزیکی مناطق دیگری از مغز هم که مکان درد را نشان می‌دهند فعال می‌شوند یعنی مناطق S1 و S2 و پستریور انسولا این مناطق در حالت ترد شدگی فعال نمی‌شوند میتوان گفت ما در زمان ترد شدگی دوچار دردی میشویم که موضع مشخصی ندارد. ویلیامز در پی آزمایشات و مطالعاتش به این نتیجه رسید که درد ترد شدگی است و از درد بدنی بیشتر تونی کشد. مشاهدات ویلیامز به او نشان داد که حتی ترد شدن به مدت کوتاه توسط قریبهی که او را نمیشناسیم و حتی ندیده این میتواند به واکنش های شدید و آسیبزا و طولانی اثر بینجامند او این واکنش ها را در طیف وسیعی از افراد با شخصیت های مختلف مشاهده کرد او مشاهده کرد که افراد پس از این تأثیرات دردناک اولیه و واکنش های تندی که در ابتدا نشان می‌دهند، وارد مرحله دوم می شوند که همانا شروع به تلاش برای راه یافتن مجدد به گروه است. آنها ممکن است در اجرای آداب و رسوم و سنن جامعه سختگیرتر کار محافظه‌کارتر شوند و بیش از پیش به شکلی ناخودآگاه خود را هرچه بیشتر با رفتارهای عرفی جامعه همرنگ کنند. آنها تا مدتی پس از ترد حتی بدون اینکه متوجه باشند از ساده‌ترین حرکات اطرافیان مثل حرکات ناخودآگاه پای آنها یا چهره آنها تقلید می‌کنند. آنچنان که به نظر می رسد این رفتار تقلید نه از بخش خداگاه مغز بلکه از بخش های ناخداگاه مثل لیمبیک سرچشمه می گیرد. رفتار های فقط در انسان دیده نمی شود بلکه در بسیاری از حیوانات عالی مثل پستانداران و پرندگان نیز دیده می شود. اما این رفتارها در خزندگان مشاهده نشده است. تا همینجا و از آنچه گفته شد میتوان حد زد که حیجانات و عواطفی که در ترد شدگی به وجود می آید باید ریشه در مغز لیمبی که ما داشته باشد پاورقی احتمال دارد حس ترد شدگی تا حدودی در تمسا وجود داشته باشد. ادامه مطلب اطلاق. شدگی میتواند اعتماد به نفس و حس کنترل بر اوضاع و شرایط را از بین ببرد و شخص را پرخاشگر کند. و رفتارهای آسیبزاب به خصوص آسیب به خود او را افزایش دهد. شخص ترک شده از فعالیتهای لذت بخش مثل مهمانی و مسافرت لذت نمیبرد و در معرض افسردگی قرار دارد. او از فرصتها برای موفقیتش استفاده نمی کند و آنها را از دست می دهد. گیرنده های یا حساس به مورفین در نواحی دی ای سی سی و ای, آی زیاد است. و احتمال تمایل شخص ترد شده به مصرف مواد مخدر برای قلبه بر درد ترد شدگی بیش از حالت عادی است. یعنی مثلا شخص معتاد ترد شده احساس نیاز بیشتری به مواد مخدر افیونی مثل مورفین و هروئین پیدا می کند. گفت همه ما در طول زندگی تجربه ترد از سوی دیگران را از سر می و با درد آن آشنا می‌شویم. و لذا در رفتارمان مراقب اعمالی که منجر به تکرار این تجربه میشوند هستیم این دقدقه و مراقبت و توجه نسبت به ترد شدگی مانع از انجام بسیاری از کارها و زدن بسیاری از حرفها که به ذهن ما خطور میکند میشود میتوان انتظار داشت که ترس از درد ترد شدگی باعث کنترل عملکرد قشر مغز از سوی بخشهای کهنتر مغز بشود ایمان دینی از سوی شخص یا اشخاص دیگر به ما تلقین و باورانده می شود و ما در پی ایمان آوردن به آنچه آنها نیست به آن مؤمن هستند احساس پیوند محکم تری با آنها می کنیم. اکنون ما و آنها همگی به یک داستان اعتقاد داریم و این داستان معمولا یک داستان ساده نیست بلکه یک جهانبی نیست. همه خانواده یا گروه به یک یا چند موجود ماورایی یکسان عقیده داریم و همگی داستانی یکسان را برای آفرینش جهان باور کرده ایم و مجموع قوانین و مقررات و احکام و اخلاقیات حاکم بر زندگی را یکی میپنداریم. این باعث میشود اگر بدانیم یک عضو دیگر خانواده یا گروه مثل ما میاندیشد و کار خوب و اخلاقی برای او همان است که برای ما خوب و اخلاقی است و کار بد و غیر اخلاقی برای او همان است که برای ما بد و غیر است خیلی راحتتر با او همکاری و معاشرت و دوستی کنیم به این ترتیب به فراست در میابیم که اگر ما هم به عقاید هم گروه های پشت کنیم آنها احساس متفاوتی نسبت به ما پیدا می کنند و محتمل است که حداقل ما را ترد کنند و شاید اوضاع بدتر هم بشود ممکن است میل به ماندن در گروه و ترس از ترد شدن از همان ابتدا چنان باعث مدیریت قشر مغز ما از سوی سیستم لیمبیک شود که اجازه ندهد وارد هیچ تلاش فکری برای نقد باورهای مشترکمان با همگروههایمان شویم به هر حال مغزهای کوهن ما نشان دادهاند که وقتی بدانند نتیجه یک فعالیت ما بتواند برای ما خطرناک یا دردناک باشد و یا وقتی بدانند یک کار بتواند برای ما لذت بخش باشد چنان فعالیت قشر مغز را مدیریت می کنند که ما به کمک آن تمام توجیهات لازم برای گریز از خطر و درد و رنج یا رسیدن به لذت را فراهم کنیم مثلا ممکن است تصمیم قطعی داشته باشیم که با دلایل منطقی و برای حفظ سلامتمان یک رژیم غذایی را تحت هر شرایطی رعایت کنیم اما به محض مواجهه با غذایی خوشاپ و رنگ و خشبو تمام آن منطق و اقلانیت دوراندیشانه را کنار میگذاریم و با همان قشر مغز منطقیمان به هر استدلالی که دم دستمان بیاید متوصل میشویم تا خودمان را توجیه کنیم که باید رژیم را تا فردا یا هفته بعد کنار بگذاریم و به خودمان ثابت میکنیم که خوردن آن غذا چندان ضرری هم ندارد و مشکلی پیش نخواهد آمد و حتی به درایت و هوش خود بابت آن دلایل به خیال خودمان اقلانی میبالیم یا مثلا این اینکه خود را بسیار پایبند اخلاقیات میدانیم و اخلاقیات و کار خوب و بد را هم به خوبی میشناسیم اما پای منافع یا ضرر که به میان میآید، به هر شکلی و با هر منطقی خود را توجیه می کنیم و به خودمان ثابت می کنیم که روش رسیدنمان به منافع و یا روش اجتنابمان از ضرر و زیان کاملا اخلاقی است و حتی از اینکه چقدر دلایلمان سرشار از نکته سنجی است به خودمان افتخار می کنیم در حالی که تا دیروز اگر شخص دیگری همان روش را انتخاب می کرد، استراحت آن را غیر اخلاقی می دانستیم. در یک مطالعه به هر شرکت کننده مورد آزمایش می که در پایان هر آزمایش می انتخاب کند از بین دو هدیه موجود کدام را خودش بردارد و کدام را به شرکت کننده دیگری که او را نمی بیند بدهد. یکی از هدیه ها بلیت بخت و دیگری مجوز شرکت در یک سخنرانی غیر جذاب و خسته کننده بود. اکثر آنها بلیت بخت را برای خودشان بر سپس از آنهایی که بلیت را برداشته بودند سؤال می آیا فکر می کنی کارت اخلاقی بوده یا نه؟ 95 درصد قبول کردند که کارشان غیر اخلاقی و خودخواهانه بوده است. آنها در مجموع و به طور متوسط از نظر داشتن شخصیت اخلاقی به خودشان از یک تا نه نمره چهار ممیز و دادند. سپس گروه دیگری را تحت همین آزمون قرار دادند. اما این بار از آنها خواستند که در پایان جایزه ها را بر اساس انداختن سکه انتخاب کنند. 90 درصد افراد موفق شدند با انداختن سکه که جایزه بهتر را به خود اختصاص دهند معنی این آمارین است که بسیاری از آنها تقلب و وگر نمی باید حدود پنجاه درصد از آنها صاحب جایزه بهتر می شدن. اما جالب است که افراد این گروه در پاسخ به این سوال که آیا فکر می کنی کارت اخلاقی بود یا نه؟ هشتاد درصد گفتند اخلاقی رفتار کردند. این بار به طور متوسط به خودشان از نظر داشتن شخصیت اخلاقی از یک تا نه نمره هشت ممیز سه دادند. در واقع آنها به شیوهی تقلب می کردند که هم جواب سکه انداختن همان هم باشد که دلشان می خواست و هم به خودشان بقبولانند که به هر حال سکه بوده که جواب را تعیین کرده. گویاب های منافع و یا ضرر و زیان که باشد مغزهای های ما می توانند بگونه قشر مغز را وادار به پیدا کردن روش های مزورانه و توجیهات ریاکارانه برای رسیدن به امیال خود کنند که خود شخص با وضوح کامل متوجه نشود که منصفانه عمل نکرده و یا منصفانه استدلال نکرده است میتوان انتظار داشت ترس از پدیده عمده رنجاوری همچون ترد از گروه باعث سماجت و جانبداری هرچه بیشتر ما نسبت به ایمان دینی ما شود و همیشه چنان استدلال کنیم که عقایدمان منطبق با عقاید گروهمان عذاب درآید عنوان کوری انتخاب معمولا گونه ی انسان در جهت تایید نظر و عقیدش شواهد تایید کننده را بر میگذند. و شواهد نفی کننده را چنان فیلتر می کند که آن شواهد اصلا به ذهن تحلیلگرش راه را نیابد. وقتی کسی گمان کند خودش به فرضی ای رسیده است و آن را مال خودش و حاصل تفکر و استدلال خودش بداند به چنین حالتی دوچار می شود و فقط شواهدی را که به نفع عقیدهش است می بیند. در واقع این یک سوگیری به نفع خود است. نه به نفع ای خاص در سال 2005 پیتر یوهانسون، لارس هال و همکارانشان آزمایشی را روی 120 دانشجو انجام دادند. آنها هر یک از افراد مورد آزمایش را یک طرف میز نشاندند و در سمت مقابل شخص دیگری می نشست که به فرد مورد آزمایش دو کارت که روی هر کدام عکس یک چهره بود نشان میداد. چهره ها تفاوت زیادی با هم نداشتند او از فرد مورد آزمایش می پرسید. به نظرت کدام چهره جذاب تر است آزمایش شونده یکی از دو چهره را انتخاب می کرد آزمایش کننده در فرصتی مناسب کارت را با تردستی با هم جابجا میکرد و سپس آن کارتی را که آزمایش شونده انتخاب نکرده بود به او می و می پرسید. چرا از نظر تو این چهره‌ای که انتخاب کردی جذابتر است؟ در بیش از 75 درصد موارد، آزمایش شوندگان متوجه عوض شدن کارت نمیشدند و در پاسخ شروع می کردند به آوردن دلایلی تا جذابتر بودن آن چهره را توجیه کنند. در سال 2013 و در ایام انتخاباتی در سوئد، یوهانسون به حال در آزمایشی دیگر از شرکت کنندگان در مطالعهشان می‌پرسیدند به چه کسی میخواهند رأی دهند سپس نظر آنها را در مورد سیاست‌های عمومی حزب مربوط به آن کاندیدا می‌پرسیدند مثلا موافقت یا مخالفت با قوانین مختلف مثل مجازات اعدام قانونی بودن سخت جنین حبس قاچاقچیان و در کنار پاسخ موافقم یا مخالفم آنها برچسب میچسبندن یا علامتی میزدند. افراد آزمایش شونده در ابتدا همان قانونی را درست دانسته بودند که حزب مورد نظرشان درست میدانست. اما در ادامه آزمایش کنندگان با مهارت جای برچسب یا علامت را عوض می کردند و از شرکت کننده میپرسیدند چرا با فلان قانون مخالف است؟ در حالی که او گفته بود موافق است. هفتاد و هشت درصد افراد متوجه این تغییر در پاسخها نشدند و بیشترشان شروع کردند به استدلال به نفع نظری که اصلا انتخاب آنها نبود. جالب اینکه که حتی نهایتا 48 درصد شرکت کنندکان به این فکر افتادند که اصلا به سراغ طرفداری از حزب مقابل بروند که نظرش با نظر جدید آنها منطبق بود. بر روی این پدیده نام کوری انتخاب گذاشته اند. ظاهرا برای انسانها در قالب موارد انتخابشان مهمتر است از دلیل انتخابشان. معمولا در بین انسانها استدلال در جهت یافتن حقیقت نیست بلکه در جهت پیروزی است. باید انتخاب من انتخابی موجه باشد؟ پس اون را توجیه می کنم تا انتخاب من بهترین و منطقی ترین انتخاب بنماید. در واقع گونه هوموساپینس پیش از آنکه منطقی باشد خودپسند است. والدین و اعضای گروه و یا معلمها و یا روحانیت یک دین برای درستی ایمان دینیشان می آورند، و گاهی از کودکان هم دلایل درستی ایمان دینی را سوال می کنند. کودک همان دلایل بزرگترها را تکرار می کند و از سوی آنها بابت آوردن این دلایل تشویق می شود. از اینجا به بعد گمان می کند آن عقیده را با دلایل خودش پذیرفته و آن عقیده عقیده خودش است. همچنین زمانی که از یک فرد مؤمن به جای اینکه پرسیده شود، چرا همکیشانت چنین عقیده ای دارند سؤال شود چرا تو چنین عقیده ای داری یا چرا تو فکر می کنی این عقیده دینی درسته است؟ سوالاتی با این ساختار ادبی یک پیش را به سوال شونده تلقین می کنند و آن اینکه این عقیده متعلق به خود اوست یا محصول فکر و اندیشهای از جانب خود اوست در حالی که ممکن است او هیچ وقت به چرایی عقیده دینیش فکر نکرده باشد. چنانچه در مشاهدات جانسون و حال نشان داده شد، همین میتواند برای شخص کافی باشد تا جهت اثبات درستی ایمان دینیش به تکاپو افتد. شاید بتوان این پدیده را از طریق اثر برخورداری هم توضیح داد که به نظر می آید چندان با کوری انتخاب تفاوت نداشته باشد. جک نیچ، و جک سیندن در سال 1984 در مطالعهی به بعضی از شرکت کنندگان بلیت لاتاری و به بعضی دیگر دو دلار پول دادند. بعد از مدتی به آنها که حالا دیگر نسبت به آنچه گرفته بودند احساس مالکیت می گفتند می‌توانند بلیت را با دو دلار و دو دلار را با بلیت عوض کنند. عده کمی راضی به این معاوزه شدند. شبیه این آزمایش به اشکال مختلف اجرا شده است مثلا به بعضی از دانشجوها ماگ دادند و به بعضی دیگر چیزی ندادند سپس درباره قیمت تخمینی ماگ سوال کردند آنها که ماگ داشتند به طور متوسط قیمت را چهار و نیم دلار برآورد کردند با آنها که نداشتند دو ممیز 25 دلار متوسط برآوردشان بود. گویی انسان ها برای هر چیزی که از آن خود بدانند ارزشی بیش از ارزش واقعی آن قائلند و نسبت به تغییر آن مقاومت می کنند. بسیاری از انسانها کوهها و جنگلها و طبیعت کشور خودشان را زیباتر از کوهها و جنگلها و طبیعت کشورهای دیگر می بینند و دانشمندان و ادبیات و هنر کشور خودشان را ارزنده تر از دانشمندان و ادبیات و هنر کشورهای دیگر می می‌کنند این می‌تواند شامل دین و عقیده خودشان هم بشود عنوان گرایش به خوشبینی احتمال مرگ موتورسواران در آمریکا سی و هفت برابر سرنشینان اتومبیل هاست اما هر موتورسواری حتی اگر این آمار را بداند احتمال بروز خطر برای خودش را کمتر تخمین می‌زند. در واقع نسبت به آینده خودش خوشبین است. ما حتی اگر آمارها و درصد بروز سرطان در ها وقوع طلاق، ورشکستگی، اخراج از کار، رد شدن در امتحان، طول عمر، سوءنه هینکار، بروز آب مروارید و یا سرطان پوست در اثر تابش آفتاب اعتیاد به الکل و مواد مخدر، احتمال ابتلا به دیابت در اثر خوردن شیرینی زیاد و ابتلا به شراین در اثر خوردن غذاهای چرب را بدانیم، اما تخمینمان از بروز همین اتفاقات برای خودمان کمتر از آمار واقعی است. می توان گفت نوبت خودمان که میرسد، خوشبین میشویم و خطر را دست کم می گیریم این خصوصیتی است که 80 درصد مردم به آن دوچار هستند. تالی شرات در سال 2011 از داوطلبان شرکت در تحقیقش خواست به سوالاتی درباره خصوصیات خودشان پاسخ دهند. مثلا اینکه آیا از نظر توانایی ایجاد رابطه با دیگران جزو 25 درصد پایین هستند یا جزبه 50 درصد بالا. همه گفتند که جزو 50 درصد بالا هستند. مسلما چنین چیزی نمیتواند حقیقت داشته باشد و این نشاندهنده خطای خوشبینانه نسبت به خود است تالیشروت داوطلبانش را در دستگاه اف قرار داد تا ببیند فعالیت مغزی آنها وقتی تخمینهای بهتر و یا بدتر از تخمینهای خودشان را می‌شنوند چگونه است ابتدا افراد تخمینهایی در مورد خودشان میزدند مثلا میگفتند با توجه به سبک زندگیشان ده درصد احتمال میدهند در اثر مصرف سیگار به سرطان مبتلا شوند و یا سی درصد احتمال میدهند که آلزایمر بگیرند سپس اطلاعاتی درباره آمار واقعی به آنها ارائه میشد اگر آن اطلاعات شامل آماری بود که بهتر از تخمینهای خودشان بود لب پیشانی مغز آنها فعالیت زیادی نشان میداد مثل زمانی که به کسی که گفته بود سی درصد احتمال میدهد آلزایمر بگیرد، گفته میشد این احتمال فقط ده درصد است. اما زمانی که اطلاعات داده شده شامل آمارهای بدتر از تخمینهای خودشان بود، لبه پیشانی آنها فعالیت چندانی نشان نمیداد. مثلا اگر به کسی که خودش گفته بود ده درصد احتمال میدهد در اثر مصرف سیگار، به سرطان مبتلا شود گفته می شود که با سبک زندگی او این احتمال سی درصد است، ل پیشانی او افزایشی در فعالیت نشان نمیداد. گویی این اطلاعات را نادیده میگرفت و اهمیتی برای پردازش آنها قائل نمیشد. پس از این مجددن از داوطلبان خواسته شد در هر زمینه ای که قبلا تخمین زده بودند، دوباره نظر بدهند و با توجه به اطلاعات دریافت شده مجددا در مورد خودشان تخمینهای جدیدی بزنند داوطلبان آنجا که اطلاعات جدید به نفعشان بود تخمینهای خود را تا حد زیادی تصحیح می میکردند و به تخمینهای علمی بسیار نزدیک میشدند اما آنجا که از اطلاعات دریافت شده خوششان نمیآمد و آمارهای علمی میبایست آنها را متقاعد به تغییر الگوها و عادات زندگیشان میکرد های قبلی خود را فقط به میزان اندکی تغییر میدادند مثلا اگر قبلا گفته بودند ده درصد احتمال ابتلاب به سرطان در اثر مصرف سیگار برایشان متصوره است حالا که شنیده بودند این احتمال سی درصد است باز هم تغییر چندانی در تخمینشان راجع به خودشان نمیدادند و مثلا می گفتند حالا 13 درصد احتمال میدهند مبتلا به سرطان شوند تالی شرط نتیجه تحقیقاتش را در کتابی به نام گرایش به خوشبینی منتشر کرد می توان گفت مغز ما در برابر اطلاعات منفی در مورد خودمان مقاومت میکند البته این مقاومت در مورد اطلاعات منفی آنگاه که درباره دیگران باشد دیگر وجود ندارد و ما فقط از پردازش اطلاعات منفی در مورد خودمان تفره میرویم ما ممکن است درباره روند اقتصادی یا آلودگی هوا بسیار بدبین باشیم اما اثر همین ها در زندگی خودمان را کمتر از واقعیت تخمین میزنیم خوشبینی میتواند ما را در بسیاری از فعالیت به جلو براند و باعث شود ریسک پذیری داشته باشیم و در زندگیمان و در دنیای اطرافمان تغییر ایجاد کنیم. اما از طرفی می تواند ما را در معرض خطر ادامه روش های غلط و عادات بد زندگی قرار دهد. اگر به یک فرد مؤمن گفته شود که با توجه به اینکه دین و مذهب او یکی از هزاران دین و مذهب جهان است، پس احتمال خطا بودن باورهای او بسیار زیاد است چنانکه خودش باورهای همه قائلین به آن هزاران دین و مذهب دیگر را خطا میداند چنین نگاهی در مورد اعتقادش مورد توجه او قرار نمیگیرد و لب پیشانی مغز او در قبال چنین گزارههایی افزایش فعالیت بروز نمیدهد و لذا همچنان شانس درست بودن باورهای دینی اش را بسیار بالاتر تخمین می‌زند تا بدین سان مجبور نشود روال زندگی روزمره‌اش را تغییر دهد و به مطالعه و ارزیابی باورهایش بپردازد گرامیان همینجا در صفحه 42 فایل آوایی سوم از کتاب فیزیولوژی ایمان به پایان می‌بریم تا درودی دیگر بدرود